و هم در مستهلین مرحبا احمد اخنثی را بحثی که بود عرض شد در زن مباحث قرض مرقوم شیخ انصاری به اصطلاح ایضاص فرمودند جزء مسائل قرض در قران هم شیخ این صورت در اصول وارد کردند و عنوان ایکی از به ها قرار دادن که برها ما به عنوان ایکی از مسائل و اون مسئله راجع به قطع حاصل از غیر از کتاب سنت یا قطع حاصل از مقدمات عقلیه یا به تعبیر بعض دیگر دلیل اقلی در مقابل دلیل سمیه در بعض از کتاب اصول به عنوان دلیل اقلی هم ذکر شده لیکن شیخ نظرشون به بحث دلیل حقیق و سمینی نظرشون به اصول خطر از تو به این که به این مناسبت ما در ضمن این بحثی رو که محکم شیخ فرمودن یه بحث معروف دیگه که عقل هم جز ادله احکام قرار گرفته چون گفتن کتاب و سنت و عقل و اجماع اون مسئله هم انشاءالله روشن بشه در ضمن همین برسون جای دیگه اتناعه در اصول مفرح نشده اینجا ما به آن را مفرحش بکنیم و در این حال هم از چون که در کتاب اصول متاخر شیعه چه اصولی که از اهل اخباری ها بوده مثل کلمات که مرمو شیخ مورد سردردین سر و دیگران و چه شیعه مثل فصول دیگران بحث ملازمه بین حکم عقل و شر کل ما حکم بهد عقل و کل ما حکم بهد عقل حکم بهد شر عرض شد که در زمین این بحث اون دو بحث دیگه هم همین سعی همین نحوی روشن بشه هم به لحاظ سیر تاریخی خودش و هم به لحاظ تعرض و علماء چه شیعه چسونی برای این مسائل و اون نتیجه نهاییم انشاءالله بعد در نتیجه نهایی دلچه میشه از شد ما برای این که این مطلب رو اتا حدی واضح تر بشه که به قاعده اول کلمات مرگمه استاد رو متعرض میشه بعد هم فرص کنیم مثلا این کلمات رو هم نمانی آغازی حالا کلمات ایشان زمین رو مفرح میکنی اونا دیگه واضح میشه و بعدم خود تحریز مسئله و چه به سر این مسئله در آمده از شد که مرموم و استاد بارد این بحث شدن به لحاظ اون تحریزی که ما چونشون عنوان که نزدن برای بحثشون یک عنوانی ما برای بحث ایشان زدیم اینا گذرش شده که من تقرار بکنم برای حفظم بود بحث اول ایشان در تحریر محل نزاع بود در در حقیقت در بله اون جایی که متعرض شدن در صفحه 58 از همین چاپ جیرم اسباح و روصول از کرد اینجا در این چاپی که در کتاب شده عنوان خط درش ندادن خدا آنگی خودش نزده خود و عنوان به خط دروشش ها نکردن دیگه مساله روشن مثلا اول ایشان که اون صفحه 58 و بحث راجع به تحریر محل نظام با آقایان اخباری هاست چون مرغوم اجمالت سر مرغو کنیم مرغوم صاحب رسائل و شیخ انساری یه مقدار از کلمات اخباری ها رو اوورده البته اه, یه مقدارش کتاب در اختیار نبوده مثلا حوادث مدنیه در اختیار شیخ نبوده محکی اون مقداری که دیگران نقل کردن و از خود سابقاً جایی اوقات شیخ مثلا از مسئله‌ای که نقل می‌کنه کلمات اون آقا مثلا هر گزاره‌ای مقدار غیر بوده ذکر کرده لذا گاهی اوقات بین عبارت شیخ با مصدر اصلی اختلاف هست منشأش این حکایت ده. یه مردارم شیخ دیده بعضی عبارات دیده بیشون مرحوم شیخ بردن که من در آخر بحث و مرحل تحقیل یک صحبت یه هم راجع به عبارات اخباری ها از خانکر خیلی به مرداری که استاد گفتن روشن بشه اصل بحث بعد از مرحوم شیخ صاحب کفایی متعرض این مسئله شدن البته صاحب کفایی مصررن که آین اخباری ها نمیگن به قطعه حاصله از غیرتفاب سنت عمل درست نیست عمل نکنیم خود نیست یعنی این مطلب عقلی مقالیشون لایق با علاقه فرد آدیش رایست به فاضل علاقه فرده هم فاضل و این درست نیست که ما به اینها نسبت بدیم اگر قطعه حاصل شد خود نیست بلکه مراد این آیم اخواری ها یکی از دو مثله یا نقی ملازمه است کلما حکم به لعه که در بحث عباراتشون شیخ هم نعل یا مرادشون این است که قد حاصل نمیشه زن حاصل میشه مناقشیشون در سقراط به اگر قد حاصل شود خود حجته این خلاصه مطلبی است که در کتاب کفایه آمده و مردم استاد هم عباراتشون نعل من به لحاظ حالا خیره ورود در باب یه درست ما روی در بحث میکنی. نه از خارج و با قولنا کارتوان و شعایی بر بحث میدهدون که بحث رو دونیم صاحب کفایی خود کتاب قوائد مدنی پیشش بوده و مراجعه کرده فرش با شیخ اینه یه دو تا مخلب اضافه نهاره کرده که در کلمات شیخ نیز و ظاهرش اینه که در از هم بوده نقلش هم درسته اون که نقل کرده مصادره ما مصدره الان ممکنه یه چیز دیگی جا شده باشه اون مهمی که من خیلی مهمه که شخص نقلو نمیخوام بشن اجمالا مطلبی رو که ایشون از سوالل مدنیه مرحوم شیخ در اساس ندوده نقل به تکرار کرده ایشون نقل به مباشره داره این راج به اما بقیه نقلات دیگه مراجعه نکرده صاحب تفایه همون نقل شیخ اتفاق کرده در بقیه فقط طرزش اینه که تواضع پیشش بوده و دو سه تا عبارت زیاده تر از اون که شیخ هست گفتن ایشون رو و از متن کتاب هستن مراجعه کردن تشریح کردن درسته من این اینجوریه کاریاشون اینو می‌خوام بگم ممکن ما در منزل مثلا 4 سال 5 تا مصالح اینو نمیشه همه اون حرفای ایشون کافی علمی نداره، اما مرحوم استاد قدس الله ونعسه کلا به کلمات اخباری ها مراجعه نکردن ها این مطلب روشن باشه تمام نقل استاد همونی در رسائله و کفایه چیز جدیدی از خودشون که مراجعه کرده باشه کلمات اخباری ها یا غیر کمونه که شیخ کرده یا اونجایی که شهر نقل به کرده مستقیمن مراجعه کرده باشه مرغوم استال مراجعه نکردن، به هر حال استاد معتقدن که کلمات اخباری ها شامل هر دو قسمت میشه هم منع سغرا و هم منع کبرا حالا چرا صاحب کفایی اینجور فهمیده که منع سغراست؟ این از کجا فهمیده؟ این یک مقدارش برمیاره به عبارتی که ایشون از محبوم محدث استرابادی نهارو کنه که بعد من عرض می کنم ولی اینشالا چونان فقط تهرسوار بازه مخلق مخلق می شون. یک مقدارشم بر می به یک نکته ای که خب شیخ اشکال میکنه شیخ به قول آلان استیحاش میکنه. چون مثلا از اخواری ها نقل کرده که اگر مثلا دلیل عقلی یک دلیل عقلی قطعی در مقام بود در مقابلش نقل بود چ کار بکن نعق مقدمه یا دلیل عقلی مثلا قطع خب شیخ میدید این چه حرف عجیبي اینا گفتن اگه انسان قط پیدا کرد چتو میشه دلیل در مقابل قصع پیدا نهمیش پس یعني اتیحاش شیخ بول آایان استیحاش شیخ این چه حرف عجیبیه که انا دلیل عقلی و قطعي رو در مقابل دلیل نقلی گرفتن که کيفايه ينگ استيهاش رو میشه جواب بدین این نکته که اونا چ میگن زن بشه یا شده دادا میشه هر شد خب ما گفتیم این نگیم این که حالا اون آقایون گفتن تصریح کردن زن میگه از این که گفتن که اگر ذیغه قطعی بود در موضع ذی نقلی بود خب میگین شیخ شیخ هم فرمودن لا از کیفی اصل این مطلب که برای انسان قرض ایجاد بشه دلیل واضحا هم باشه و با این که واقعا نیست قرض ایجاد بشه این استیحاش شه توسن شد منشع شده که مثل صاحب تصور تصابر بکنه اونایی ها اینه که قط حاصل نمیشه آجتا میشه چه حاصل بشه از اونم ویل باشه پس مراد اینه که قط حاصل نمیشه این روشن شد سر فهم صاحب کفاییه چیه من روشن میگم خیلی حالا بعضی این باشه بعضی بارشونی که اصلا قطع هم حاصل بشه نیست. الان من بحث رو به همین مقدار مطرح کردم چرا چون لازم میگه خودت هم انکار بکنی، کاری رو خود من نمی‌کنم. از, از هم کرد که نظر اخباری ها نه به من اشوراث من ایکوبرا است این بحث بحث لحظیه. ان شاء الله بعد توضیحش رو خواهم داد. الان مراجعه بکنید به این بحثی که مردم استاد مطرح کردن، نه نظر اخباری ها به من اشوراث و نه به من بمن ایکوبرا مرادشون چیز دیگه‌ایه، توجه نشه در کلماتشون. یه دو تا عبارت از اونها دیده شده و فهم واقعی بر اون کلمات نشد. انشاء توضیحش بعد حالا این ما فعلا فهرستوار. maksud پس تا اینجا استاد ارضا که اخباری ها دو تا مشکل دارن. یکی این که از این ادله رد پیدا نمیشه، یکی اینکه به رد پیداش اون جهتی نیست. هم سوره هم قرآن. این یک بحث. لهزا مرحوم استاد در هر دو با اخباری ها بحث میکنن. اولی رد پیدا میشه، چطور این یکی ساله اگر هم نبیده شده بجته شد ایشون وقتی زمینه بحث رو اینجور گرفتن خالی من منحج بحث رو هم اینجور قرار دادن مثلا این منهج بحث در کتاب رسائل یا کفایه نیامده استاد بردن که کلام سال خنف سغرا کلام مخراف کبرا چرا؟ چون اخواری به نظریشون در هر دو ناغشه گردن هم در سغرا و هم در کبرا خب ایشونوزه در هر دو کرده هم در سهرور که آگاه پیدا میشه یکی هم در کورا که اگر فرض بگذارم حجتوش ان شاء الله روشن شد طرح اصل محض این کیفیت ورود بحثه در بحث به در بحث از طرف معلوم استاد بعد مطلب دوم ایشان که <تصفح> اومدنش برای خودشون باز اینجا خط سیاه بزنن خط تیره بزنن و خاص بدن بحثه، یعنی بحث اول تحریف محل نظامی، بحث دوم تقریب سغرا تحریف سغرا آیا قرد فیدا میشه یا نمیشه؟ ایشون میتونم مواردی که ممکن است حالا به اصطلاح من دلیل عقلی یا مورد غیر کتاب و سنت قرد فیدا بشه سه کاز به تحریف بگیشان یکی اون مرد البته ایشون حکم عقل رو چون از پندی و حکم عرضی نه حکم عقل ادراک عرض گرفتن که من توضیحش سامن هستم بعدم عرض میکنم. اینشون ایشون تا گرفتن یکی در که مقام ملاکات مل... و مسالح و منافع مفاسد شش در آخر این بحث تعدید به منافق کرده که اگر انسان قطعه به منافق اون منافق و ملاقات و مسالح و مفاسد یکیه و این مراد این است که انسان هر چیزی را بکنه فلان فعل فلان عمل داره مصلحته داره مقصده و چون داره شاره و داره واجب یا مستحب شده داره مقصدهش شده حرام یا مکروه شده این مراد ایشان ایشان توی مقام سقراط تن اشار میکنن یعنی حق با اخوایاست حصول حق مشکله حق به ملاکات چون اولا احاطه به ملاکات خواست که ما احاطه نداری ملاکات مزاحمات داره تزاحم داره با یکی دیگه ما احراز به اون تضاحم هم نمیتونیم بکنیم البته ایشون فقط به همین مقدار استفاضه داره مشکلات دیگه هم داره حالا من بعد ان اشاره دیگه خواهم کرد مقام دوم حکم غصب پیدا بکنیم در موارد حسقوقه که همون حسقوقه اصلی باشه والله ایشون تعبیر غربی نکردن حسق مثل حس اطاعت و قمع که معصم مولا قبیه. اِشون این مقام رو فرمودن چرا غرض پیدا میشه و لکن ازش حکم شرعی در نمیاد تو این مرحله امتثال اطاعت بسیار مرحله متأخر بعد از جعل مستفید حکم شرعی نیست درسته اما مثل اون مقام اول نیست مقام اول احراز می کنیم پیدا نمیشه واسه است. اینجا غرض پیدا میشه اما مستفید حکم شرعی نیست همون اشکال دو که اگر مثلا اطی الله و علی و رسول مولایی بشی از ذمن ال اشکال معروف اطاعت و اطاعت نمی باشه این باز عقلی صرف باشه چون اگر اهلی بود از عقل حکم شر باشه یکی بگه میگه که اطاعت باز اون حکم اطاعت یک عقل احل باز عقلی که دیگه ذمن شر و علم اجرا یا ذمن اون مثلا سوی له مالانه است این اشکالات معروفی داره و لزام ایشان قبول دارن که ما ادراک و حسن به می میکنین ادراک نه اینکه حکمه نه اینکه واداشتنه نفس ادراک و حسن و قبه میکنین ولیکن استطباع حکمه شرقی نداره چون این مال مقام انقصاله این مال مراحل بعد از جل در مراحل بعد از جل نمیشه استکشاف جل کرده استکشاف حقه مولدی کن این هم مورد دوم مورد سوم قرط ویدا میشه به تعلیلیشون موارد عقل نظری. چون که عقل و حب ملازمات ایشون مثلا ملازمات بنویشه بنده اضافه کنم خب با آنلات چون هم تلازم داریم هم تعارض داریم هر دو داریم دیگه خب ایشون می‌فهمد در اینجوریه که قصد میشین. مثلا عقل میدونه تلازم هست بین فعل شی و فعل مقدمهش عقل میدونه تعارض هست بین شی و ضدش تعارض دیگه خب اگر به انسان ببر خب نان بده هم چه انسان به خوابم به خوابت با خوابیدن نان با نماز خوندن تا آنود دارند این عقل نظریت به تعبیر ایشان عقل نظری که عقل نظری درک میکنه تلازم یا تا آنود روشن شد مگر ایشون میگه غلط پیدا میشه چرا نشه چون تلازم که عقل درکش میکنه خب اگر عقل درک کرد شاره هم گفت نان واجبه خب به تلازم مقدمش هم واجبه ایشون میبره ما اینجا پیدا میشه و این قطعه هم مستطبع حکم هست ازش حجوع مقدمه یا حرمت زد و در میگاریم اگر گفتیم تااند هست بین نان خریدن و نماز خوندن گفت نان بخر نماز نخون، حالا که تااند شد خب اگر نان خریدن واجب شد نماز خوندن جایی دو میشه من نیمیشه حرام نشت. این پس ایشان سه مورد را از حکم قطعی گرفتن که محل کلام در حکم عقلی یعنی حکم عقلی رو سه تا میدونن یکی کشف ملاکات و مناتات یکی مسئله حسن قب یکی مسئله عقل نظری در کش ملاکات میگن مصطفی حکم شرعی هست از اون ملاق رو احرازه میکنه در مقام دوم میگن حکم هست اما مصطفی حکم شرعی نیست در سه رو قبول دارن که هم قرار فیلو میشه هم حکم شرعی است. که مثلا ما میکنیم مقدمه واجبه و حکم میکنیم زده شرامه این خلاصه نظر مبارک ایشان در مرحله اول در تنقیح سغرا به تربیه شد این مطالب رو البته بی این نحف نه... خب ایشون فرمودن این نحفه خلاصی و این بیان نمیدون حالا در این دوره اول بوده بعد برگشتن اون رو دوم سوم بون چون ایشون یک عقل نظری گرفتن با یک عقل عملی چیز دیگه ملاکات ملاقات گرفتن معروب بهشون دو تا بیشتر نیست سالا این سومی ایشان چی که این سالا بعد از خواهم کرد و اما به لحاظ به اصطلاح نکته مسئله یه تلازم و ملازمات در این کلمات اینها نیامده به نظرم کلمات آزیاد دیدن مسئله ملازمه رو پر نظری باشه به تردیلی مسئله عقل در مناطات این در شیخ هم آمده مرموم آیین نایینی هم این بحث از که تو بحث تجربی انجام دادن که خلاصهش این شد که ما قاعده ملازمه را توی معلول رطفه معلولات قبول میکنیم که رطفه علل قبول نمی کنیم علل یعنی مثل هم مفاسد معلول هم مقام اطاعت انخصار ما اونجا قبول میکنیم, اینجا قبول میکنیم. شاید مرموم استاد یه تلفیقی بین اینها به لحاظ سقرا شیخ داره مناساس رو داره شاید استاد یک کلکی مابین مجموعه کلمات کردن از وقت شیخ اصول دین رو هم داره که مثلا در مسائل اصول دین اگر قرد فیضا شد به خلاف ادله مثلا چون اون قرد رو جد داره پرسید باب مثال این باب مثال از می کن پرسید بگیم برحان فلسفی قائمه از بر قدم آلم این باب مثال خب زواهر عدله هم حدوث آلمه چک این قاعده رو میشه اراده کرد و نمیشه اراده. یا مسائل جبر و اختیار الی آخر مسائل کرد. یا مسائل نسبتاً کوچکتر در عقاید مثل مثلا حق. چون به قول خودشون جزء بدیهیات عقل الواقل لا ينقل به اماه و علی. و به حق ظاهر است که انقلب ان الحسنات يذهبن السيئات. تفسیر فزناواش شد. نماز شب سیئات رو میبره بردن این خلاف ظاهره. لئن اشتبهت لاحفظن عملك. این بحثی جزء تصادفی از مثال‌های اخباریام هست که اگر عقل بدیهی میدونه که حبس باصله اما ظواهر روایات هست لنا شک یه سری هست گفتن خب عقل میگه چیزی که الواپس این آقا شاوخود میبود بهسا پس این شاوخود این دیگه شاوخودا که از بدن مییره باگه بده چطور میشه این اگه نماز شاوخود شاوخودا از بدن بره انقدر حسابی رو به سیا زاهرش اینطوره یعنی اون صحیره رو بر نیست خوش تو اجازه. هر از ار اون بحثایی رو که محرم گردن چون میگن مرحوم شیخ قدس الله نفسه از فقرا یاد مثال نذره حتی در اینجا یه حاشیه‌ای داره، شرحی داره حالا منم دیدم اون رو نا. یادم هست شرح یا حاشیه سنام حاشیه خواننده. حالا, حاشی حالا درصائل شیخ حتی که تو کامپیوتر هست در بین شرح و حاشیه و این تا ذهن من چاپ نشده. مال مرموم سرسد و دین قومی سرسد و دین قومی خسینی قومی رزان و خیلی مشهور نیست کتاب خوبی هم هست شرح بر واقعیت اصوله برموم فازل تونی واقیه چاپ شده تازگی چاپ شده من این شهر واقیه الان نمیدونن چاپ شده دانه. الان به نظر تو ذهن هم هر این ناز کشیدن یا چاپ دارن میکنن یا تحقیر کردن من تا که وارد جای می کردم به نسخه حقیق مرعشی. کاری کتاب نویس معاشی کاری داشتند کتاب بعدی وقت خاورالعالم مثلا سال قبل دیدن کتاب این سفرم بعدی نبود شرح وافریم زدم هاشی از قول و, و سرهاشی باشه من گفتم خیلی وقت است کتاب چهارمی جا وارد جای می نکردم خیلی خبر ندارم در اونجا ایشون مواردی دارم از فارغ ذهنت من و نقل آورده متأسفانه من این کتاب الان پیش من نیست. نمی‌کردی موارد دارو بگویی نه کرده بود، این بحث اولسال مرغ در سر و بیشتری پیدا می‌کند. این اولتره مشکل کار ما وقتی مراجعه به مدرسه اصلی نشود، معلوم می‌شه بحث در چیه سر و سامانی، حالا یشون با خدا نه هدش می‌کنه یه بحث صورتی مدرک کرده، مدرم میشه میگه لایه این کتاب حتی اولاه در شرح حیث مدرم اولسال مدرم آشکش مزای الله اصل وسایل اوورده عبارت مردم من خودم مراجعه کردم به خطی این کتاب، اما تو ذهن من چاپ نشده. در ابتدا یادم هفته من هم نوشتم توی یادداشتی که خودم می‌شناسم مراجعه تازه نکردم. یکیش هفته که بگو خب با هم عقل میگن هفت درست نیست، اما از طرف دیگه ظواهر نصوص هرچه هست، و حتی اول مورین علمای اسلام اجمالاً سه تاست. هفت هفت هفت نیست تفسیر بین حسنات و سیعا حالا من نمیخوام خواهد بحث بشن نفس کلامی رو اینجا رفت کنم هر از فقط این بود که این مواردی که اخواری میگن ما حکم عقلی رو قبول نداریم چیه اصلا میدونیم مواردش چیه استاد این موارد سه تا قرار دازن یکی مناتات از کن مناتات یا ملاقات به تعدیری یا به تعبیر مرحوم نائینی رتبه علل اهکام ایشون ملازمه در رتبه علل جاری نمیشه در رتبه معللات اصلاحی داره مرحوم نائینی اصلاً این اصطلاح رو به کار ایشون این دروسته رو آوردن اول و دوم دو این دو تا حرف علصه به این تعبیر من ننوشتم سه سوم میشم ملازمات ایشون ملازمات رو هم قبول کرد پس سه تا مورد برای حکم عقلی دقیقه حکمه اقلی مصدر که از هم یکیش میگن قرض پیدا نمیشه توی یکیش قرد پیدا میشه مستثبه نیست توی یکیش قرض پیدا نمیشه مستثبه هم هست این خلاصه نظر مرگوم استاد در این که اخباری ها چی میخوان بگن؟ و اگر ایشون همون مطلب حاشه مرگوم صدر رو دیده بودن بزین روستن که اخباری ها خیلی بحثشون غیر از ایناست و لا اقل همون فوائد المدنیه رو مراجعه که من اینشالله در جلسه آینده خود عبارت فوائد المدنیه رو میاریم تحکیب میکنم من همونه تاکیبای پیش هم بوده نخونده بر ما تحکیباور حیرتابر چطور میشه ایشون نخونده و همین مقدار مختصر استفا کرده ایشون دقیقا موادس رو آورده و مفرح کرده یکی یکی دانه دانه مفرح کرده من اینشالله مفرح میکنن و مرادشون اینه که در این جوجا حکم عقل و حجت نیست کاملا شهر داده ایشان با ذکر مواردش که من عرض می‌کنم حالا من فعلا یه برداشت کلی پس ایشان از اون مهردادی که شیخ احمد کردن مرحوم استاد بحث اصول دینش رو هم انداختن این تا اینجا بحث سهروردی بحث دوم در کلمات ایشان بحث کبرا صفحه 60 اگر آن خواستم دقت رو از صفحه شست ایشان تا صفحه شست و پنج عنوان بقیه الکلام فی فروه تو همه فی هل من و عمل امال بالقبل ما این فروه اینجا متعرض نشدیم چون شیخم اینجا متعرض نشده آن من ترجم چطور استاد اینجا آورد این فروه رو این فروه است که تو علم اجمالی متعرض شده ما این فروع هم از هم یالان بگیم این چند صفحه که ایشون دارن، و دوم، تا علم اجمالی صفحه سه این فروهیش هم نیمیخونیم بحثی که رو همون علم اجمالی این اینم راجع به بحث کبرا و ذکر صفحاتی که متعرض کبرا شده اما کبرا کبرا این تا ای قط یا نه خب آیان تا اینجای کسیس اصلی کرده بودن رو یا طریقی گرفتن یا موضوعی اینجا روشنه قطع طریقی هم گفتم به تمام مراسلش حجته از هر سببی باشه در هر موردی باشه از هر شخصی باشه در هر حالی باشه در هر زمانی باشه در هر مکانی باشه فهمم میکنم قطع قطع دیگه فهمم قطع موضوعی قابل تصرفاته چون میتونم بگه موضوع قطعی که موضوع حکومنه اینه اونه این خیلی فرقش بازه قطعی رو هم که در مقام انتصال و تنجز تکلی بهتر این که به جای بحث امارات و قطعا نمیدار و زندان نمیداری هربا بگذارم مثلا از پس رابه خامس فی تنجزه تکلیفی تنجزه هب ما اندام تو مرحله تنجزه هب آیا مدعی که در مرحله مرتبه تنجزه هب اون قطعی که احس شده و طریقیه این روح مطلب رو اول نفهم چیه این مقدماتشون پیشون واضحه پس یک قطع طریقی و اسباب و اشخاص و افراد و نماز و مکامی هیچ خود سده فهمه میکنی دیگه چون نظر به قول آیان به محسوقه حالا محسوق در استعمال عربیش درست هستی تو اصول باید کار نظر به واقعه نظر به طریق نظره این یک. دو ما در اینجا چون نظرمون به واقعه در مذرد دو این که اون قطعی که در مقام تنجز و حقه هست اون قطع حقیقی یعنی سایه غض کرد این مطلب واجبه یا حرامه یا مستحبه از هر سببی باشه برای هر شخصی باشه اون قطع حجته این دو تا مقدمه رو که گرفتن پس نتیجه گرفتن که شما اگر قطع به حکم کرد ولی اون به چشف ملات باشه شاید معلوم شده در ذهنشو در بعضی از کتب آمده حتی اگر از قیاس برای ما قطع و ابتداشو من ایشون به عنوان زوابد دیدم مرحوم سید مجاهد آن نفهمیدم ماست دریک لقب چیکتابی رمیزه نفهمدم من درس چیکتابی. چی اون نفهمیدم و نفهمیدم این تازه این مطلب مال خود ساله زAVING یا مال کسی دیگریه و بعدش این سال زAVING که دیگه ساله کتاب. مرحوم همون مجهز کتاب دیگه داره زAVING مال من, من همون شریف ول الله نه اینی که دیگه. اما یه در اونجا هم ایشون میگه که اگر از نیاز هم این فیل داشت ولی حجت هم. هم نه میگن اگر آمر در این تنه بلو از خیاس باشه ولو از دلیل احلی باشه ولو شما کشت و ملاک کردیم از خود جهر لذا مرحوم استاد این بحث مرحوم شیخ از که این مطلب مرحوم شیخ دیگه مطلب که به فی حجیت القرط و وجود متابعتی لا و بناشون به اینه که از هر و این قطعا طریقی از هر کسی باشه از هر چیزی باشه از هر سایی باشه از هر موردی باشه و جید داره موجب تنانتیزو حکم میشه لسه ها مرحوم استاد وارد بخص کبرای شدن ایشون میگن اگر ما قطعه فیضا کردیم ولی از احکام عقری دیگه اون قطعه خجته لفت جدیشی میشه بخص کرد. این مطلب با مرحوم شیخ خطاب و, و ناینی و دیگران صاحبه مرحوم مرحوم آزیاب و اینها موافقت کردن البته یه نکته هست من نفهم یک چیزی پیش آمده باشه. مردم آیا شانس نزد فانی و مردم باقلان کمپانی اون دهش ندارد؟ اونهاشیه دنچ نداره. اینکه اونها چه داره؟ اینجا هاشیه ولی این فصل با اینکه این فصل که فاین زدمو فصل هست هیچی هاشیه نداده یشون نه اما چی شونده باشه؟ حالا در بر... این کلمات اول مارز دو کنیم که مرد بیش چی شده؟ البته مردم استاد خیلی خوب خشکه بودنیشان انسان در تقریب مطلب خیلی زور خاصی داشت ایشون خلافن به طریقه معلوف مراد من طریقه معلوف نیگه در رسائل یا کفایه است ایشون آمدن یک تلفیقی کردن بین کلمات محبوم ناینی و بین کلمات رسائل یک تقریب خاصی دراباره این تقریب مخصوص خود ایشانه این تقریب جلگه نه ایشون آمدن فهمدن یک مقام سبوت داریم مقام اثبات. آیا من از در مقام... مثلا از سبب ماعیم در مقام سبوت ممکن بعداً بعد به در تو مقام اثبات این نحوه بعد ثبوت و اثبات رو شما مثلا در رسائل یا نمی بینید حتی خود نایری هم نداره ایشون یه تلفیقی کرده کلام نایری در مقام ثبوت نتیجه این نتیجه رو گرفتن مرحوم استاد این تقریب لطیف اما در مقام ثبوت به این معنا که اصلا ممکن است شارع بگه قطعی که از این طریق پیدا شد از این سبب پیدا شد حجت نیست الغاء حجیت این مرمون شیخ میگه ممکن نیست میگه ممکن از شارعه مناقشه در قطع شما بکنه بگه شما قطع نداره بی خود میگی از کجا قطع پیدا کردی؟ تشکیج بکنه تا قطع شما از بین بره اما شارعه دی میتونه بگه لا تنالو بید و, و را نفیه شارعه دی میتونه بگه قطعه جد نیست این مرمون استاد این رو مقام سبوت و اثبات داره. مرادشون از مقام سعود اصلا فی نفسه ممکنه یا نه دو آیا از مقایات که این در می مثلا از کلمات محدث استرابادی تقریبا هر دو مطلب در می آن یعنی تقریبا به یک معنی حالاً من توضیح میدم. دن ایشون مخواد بگه که اصلا شاره جلوش گرفته و مخصوصا یک روایت است که در اینجا مرحوم شیخ رو برده. اون منشه این شده که مثلا این تصور پیدا بشه که امکان داره شارع نهی از علم بکنه که از یک سبب معین امکان لااقل داره مرحوم ناهی میخوان بله امکان داره و این روایت ها دلیل گرفتن در حقوق لكن بر حقوق در قیاس چون روایت در قیاسه آی خویی روشن شد در چه؟ الفی یه راغشی رو می‌ذار واسه نه بحث مرحوم شیخ کفایت نه خود مرحوم سبوت و اثبات نداشت آیا تو مقام سبوت امکان داره کلام مرموم صاحب مرموم ناینی رو زدن به امکان میگن بله امکان داره اما در مقام نتیجه خود مرموم استاد نتیجه یکتنی که امکان نداره چون امکان نداره دیگه مقام اثبات بحث نکردن از کلمه مراد در اعتباریات، یاد ما چرا عرض کردیم که سبوت اثباتشون یکی دوتا مقام نداریم. حالا خیلی خوب. حالا این برد مناقشات خودون عزم. این هم راجعه به طرف اصناد. و اما امکان و عدم امکان. ممکن از شاره به یک از یک سر معین حجت نیست. مرموینا اینه غیر از حالا بحث امکانش و بحث فنیی که مطرح کرده گفته در باب قیاس ما داریم. مثلا این در این صفحه آیه استاد مجموعه نهاره کنه صفحه چست و دو الا بله فلعمن و ان العمل بالغط به ها در معناه الراجع تقیید المقتوع به اون مقتوع به رو تقیید می کند ممکنون الا انهو لم ید العلا بهویه دلیل الا فی موارد قلیله که القط الهاسل نقیاس الامایی زهر رو به روایت ابان. این این روایت عبان هم عرض کردم این بحث مفهوم شیخ انساری اومدن براش رحم الکل که از همه روایات شریعت روایت عباد. روایت عبانم شاید در ذهن مباشون باشه که عبان به امام صادق عرض میکنه که در یک انگشت زن چقدر دیه هست امام میفرما 10 تا ده شده. تو دو تا میفرما 20 تا تو سه تا میفرما سی تا. 30 تا میفرما 20 تا. بعد می سبحان در سه تا انگش تا در چهار تا تا در تا انگشت سی تا در تا دنگوش بعد میتونم از عوان به خدمت امام این نهازا کان یبلو قناه نهن فلعراق ما در عراق اینه میشنفتیم فنبر من قاله و نقول ما جائبه نلدی جائبه شیطان این حکم شیطانیست رحمانی نیست حضرت هم مح یا عوان بعد حضرت, بعد حضرت که سنت پیغمبر است که دیه ی زن دائما نصف نمیشه در احضا تا سلسلیه مصابیت با مرد از سلس که شد نیست میشه مثلا در یک انگوش مثل مرد دو تا و ستا مثل مرد به چهار تا رسید نصم به نصم که میشه بیستا این جزء ها پیغم بعد از فرموزن که انما آخر سنی برقیاس و سنه اضاقی سر موه قدنی میگن که مثل عوام برش قرط پیدا شدون که اینجا باطله این گفت باطله که یتا 4 تا انگوش 20 سال معذرت که امام کاری نداشتن که زال خرج شده نشده جلوش گیرفتن محیا ابا فرمودن نه این حکم الهی است ولی اینطور نیست که تو این روایت با رو مرحوم شیخ آوردن برای اینکه منع از حجیت قطع حاصل از بیا و ناینی هم به همین شد سرش اینه چون ابان ابان یک شخصیت بزرگیه این اشتباه نشه ابوالابن تقلب، در اینجا مراد ابوالابن ثقلبه، بسیار مرد بزرگایی وایز در هم در بغد هم که بوده، اصلا در دنیای اسلام ابوال یک شخصیت بزرگ علمی بوده. مخصوصا که اضافه بر تمام اونجا، مقری قران، اصلا قراعت خاص داشته در مسجد کوفه الاغی و فقی هم بوده و اهل سنت هم به چشم فقيه او نگاه میکردن و شیعه هم بوده می‌دونسن شیعه است، ولی خودشون شیعه معتدل رو حساب می‌کردند. یه نوع شیعه و لذات داره وقتی ایشون حجمون شرف می شود یه حالو فرس یکی از اون ستونهای هم همبره برای عوان خالی میکرد میشه اونجا سنی ها درواز جمع و فتوا می داد سآل می میده فتوا می عوان یه شخصیتیست که بین اهل سنت هم فوق العاده جلالت شهن داره بین ما هم جای خودش و مرحوم و استاد حالا من جواب استاد رو بذارم تو بعد برید روی امکان مرحوم و استاد فرمودن جواب بعد فرمودن در صفحه ایس جواب و روایت عبان رو آخیر دادر و اما روایت عبان ظاهر عبارتی ایشان است که اگر قطع از خیاسم حجت شد حاصل شد حجته و اما روایت عبان روایت عبان زعیفت و سنرطلای است به حال اعتماد رویم و سانیان لا دلاره تله ها معلوم کیشون قات داشته؟ از خودشش میاد بله. ایا بهرامین ها کنه هو مسلمن نه؟ و در قات همه اش میگن نه ما از دیالاشون منابعشی سانیان ساله سن نیست. ول ساله سن نیست بیاد امام مگفتم قات تو حجت نیست. امام میخواد بگه تو بی خود قات پیدا کردی؟ این مناقشی در صورت تو چرا قات پیدا کردی؟ تو مثلا اینطور تولدت من قطعه تو این درست نیست و نباید برسه اما اون جواب ثبا ایشان که خب خلاف زار زارش میخواد میگن اصلا بیاز قابل اعتماد نیست حالا میخواد قطع بیاره میخواد قطع بیاره قطع, بیاره. قطع, بیاره. قطع بیاره. سر خرس نیست. نیست سر این جهاد نیست و اما ضعف اسناد که مرموم استاد فرمودن البته ارز کردم چرا اون وقتی که استاد این قسمت ها رو نوشتن و بحث فرمودن، مبانی رجال ایشون نداشتن خود مرحوم استاد مبانی رجالی اینه ایشون چرا این حدیث رو ضعیف حساب کردن خود من هم هنوز نمی‌دونم احتمالاً یک جایی بوده یک کتاب و اصولی بوده مثلا کسی بیشون کتاب و اصولی ایشون داخل نوشتن رو ضعیف داشت خودشون خود ایشون مبانی در اون زمان نداشتن دنبال مبانی رجالی نبوده تعجب آور ایشون حالا از کجا اونم نمی‌دونم آقا مراجعه کردم مصادر قبل از ایشون جایی پیدا شد بعضی از روایت در م... کتاب سلاسه آمده تهذیب آمده شیخ ناصرالدین مرعون کلینی ناصرالدین مرقوم صدوق در آمده سند صدوق مشکل داره نظرشون به سند صدوق بوده اما سند کلینی و شیخ هر دو صحیحه و دو سند مستقل هم هست. این سند شیخ و کلینی از دو اثر مستقله و هر دو و هم صحیحه و این کیفیت هم قاطع نبودم که خلاف ظاهره اسولا این یک بحثیه اولا امام فرمود انکه اخر فنی بالقياس آخه بیاسی قیاس چی به چی کردن تازه بر یک استعاض یک مسئله قیاس آقا میگن باید فرعی باشه اصلی باشه چی این باشه یک علتی باشه حکمی باشه مثل مثلا اصل خمر باشه فر نبیز باشه حکمش باشه حرمت باشه علتش هم مثلا اسکار باشه جامعه اینو میگه آدم چه ما میفرما ده به قیاس این چه ریاصیشون کرده؟ یه چیزی مثلا ریاض کرده، چی رو چه ریاض کرده؟ اگر بگیم مثلا گفته سه تا سه تا چهار تا 4 تا خب این که ریاض نیست. این طبقه قاعده کلی. یعنی من تصورم اینه که این آقایون باید اول توضیح بدن که این اصلا رو یعنی چی؟ و چی ریاض کرده و چی گفته عوان، و در ذهنیت عوان چی بوده؟ مشکلی رو که عوان داشته چی بوده؟ چه اشکالی در ذهن عوان وجود داشته؟ و منشه اینکه که این مطلب رو یقین داشته چی بوده؟ و چرا مثلا اینکه شون گفته این نلدی جایبی شیطان عوان خودش فقیه و میدونسته و مطلب رو خبر داشته و اطلاع داشته؟ چطور شده که مثلا همچه حرف عجیب غریبی از عوان صادر شده؟ و عجب از اون اینکه امام فرموندن آخر تنی بر قیاس من فقط این مقدار رو ارز برای یک ذهنیتی برای آیون درست بشه بش کار بکنن که بیناید چی اصلا مطلب چیه به این است که آیون متعرض شدن یا مطلب چیز دیگر این راجع به یک بخش هم راجع به این رواست اوان که اشاره بشاره اجمالی کردیم و جواب استاد رو ارز کنم <تصفح> <علا؟ تصفح> قیاس و اولویت اصطلاحا مثل لا تقل له ما عف مثلا عف بشون نگوینن زربم حرام اولویت اصطلاحا این اینه حالا اصطلاحیون می‌ینه که مفهوم موافقتش میگن اصطلاحا قیاس و اولویت اینه ولی اونم بحث معروف که خب خیلی زیاده از علما ما خیاس نمی‌ذارن او اصلا میگن یه دلالت مفهوم موافقت و ثابته قیاس اصطلاحی نیست بعدم تطبیقش رو ما نحنفی حالا 40 توصیفو هنو عالم هر انگوش در قیاس یه حکم <تصفيق> یعنی هر انگوشی 10 تا زن 10 تا 100 مثل مرد مرد واقعیت داره مرد یکی ده تا 20 تا 25 تا 50 تا 60 تا 600 تا و مرد هم بعد المنفعه النفس ان السنه اذا قيست مهمت اینجوری داره تو چیزی این یعنی چی ولا بخصوص زن و قیاس میشه تصور جدی مسازی یعنی قیاس بکنیم مرد رو به 10 تا 10 بالا در زن هم شکرده 40 تاش مثلا میشه چه؟ تا میشه 40 تا بعدمون بروزه 20 این قیاس نمیشه چه رو قاعده است دیگه یعنی مراد از قیاس در حقیقت نو قاعده همه البته بگم آیان ما الان ذهنیت آیان اینه اونی که وجود داشت من اشاره اجمالی میکنم اینشالله بعد توضیحش ارز میکنم اونی که وجود داشت در واقع این بود فقهای های و من هم ابو حنیفه اینا میگفتن که یه از هم اول نصف مرده چون دیاد اصطلاح کی در نفس یکی در اطراف، یکی هم در منافعه اصلا نمیبینه خوب نمیبینه چشمش سالمه. نمیتونه شده بینی میشه کار مثلا زره دست دستش دست سالم بینی این روش دیات منافع یکی هم شجاج و جراحه اینا اخسام داره اینو معتقد بودن که هرچانه که دی ای زن و مرد در همه نیسته تو اعضاء نفس تو منافع نفس تو شجاعت پس بنابراین اگر در همه نصف باشه در یک انگشت 5 تا میشه. در دو انگشت ده تا میشه. در تا میشه. در چارتا تا میشه اون در بیستاش اشتال نداره این, بیستا این تو بیستاش اشتال نداره ترجه نشسته اشکال اوان تو اون اولی است نه تو بیستا این رأی اهل ارام بوده رأی اهل بر این بوده که از همون اول نصفه رأی اهل مدینه چون اصل اوان فقیه ای تم ترکیب میکنن مدینه می آمده رأی اهل مدینه من هم این بوده که نه زن و مرد تا سلط حتی در شجاست در جراح در منافع فرص که مثلا زری درست این زنی که کاری که نیمتونه بینیسته فرص این دیگه در مرد با مثال دخت شطره. تو زن هم دخت شطوره اصولا در بیات در بیات کل کل <تصفح> انسان زن نصف مرده در اعضا و منافع و شجاع اینا چند قسمان دیگه زن و مرد مصابیه تا سلس اگر تو مرد آمد بیستا شطور سیزا شطور زنم با مرد یکیه یا ابان. این المرعته تا آقل رجال الى سلسه دیگه فعلا جازت سلس رجال الى نس اوش در اعضاب و منافع و زخم ها مثلا دریه رواز داره که مثلا اگر پرسان زد مثلا اون شجیه یا اون جر تا استخونه شدیه 20 تا چطور باید بده اگر نسبت به هم این جراحن ایجارتون انجام 20 تا سر نمی کنه تا 33 تا که سلسه چون دیه کامل سر تا چطوره تا 33 تا هر جا تقدیر در دیه تا 33 تا زن و مرد مصابیه از 33 تا که رک شد میره به دیه کامل زن نفس میشه از اولا تصور بفرمایی اشکاله اوان ظاهرم بخاطر این که شیخ انسان درس هایی جور فرموندن آلوم ذهن اوان سر چیتا نیست که با سیتا آلومن خیاس به سیتا شده ذهنیت اوان اینه در اهل کوفه از اول نفس بوده در ذهنیت اهل مدین فتوان نه ذهنیت از اول مساوی تا غیر از دیه کامل دیه کاملی که نشده چون و لزوم اگر خوب دقت بکنی امام فرمود ان سنت اضافی است چون این تنصیف هم در قرآن نیامده تنصیف دیه زن تو قرآن که نیامده این از کجا اخذ از سنته باشه اینکه امام چرا من سنت اضافی گفت چون تنسیف بیزنت در قرآن نیامده و چون از سنت آمده در سنت در نفس نصف در غیر نفس دون نفس هر کدومش اجماع باشه تا 33 کتور از بعد از 33 نصف باز میشه پس بحثی رو که امام میخوان با امام بکنن اینه که تو اصلی روی قاعده عامه تو تصور کردی از همون اول نصفه حالا تصور عبان هم فقط قیاس صرف بوده که امام در اینجا فرمودن یا چیزی دیگری هم بوده که حالا عبان جواب نداده. ما احتمان چیزی دیگری هم بوده. حالا عبان جواب ندارده چیزی دیگری هم بوده. بعد در بحث آینده الان ما بحث آینده هم به هم بشن. رو تابان رو فقط ارض کردم برای ذهنی هم. بحث آینده هنوز کلمات اصلاح همه می کنم با